فصل 12 شش روز قبل از عید فسح عیسی به بیت انیا محل زندگی ایلازر یعنی همان کسی که او را پس از مردن زنده کرده بود آمد آنها در آنجا برای او شامی تهیه دیدند مرتا خدمت کرد و ایلازر با مهمانان پهلوی عیسی بر سر سفره نشست آنگاه مریم پیمانه از عطر بسیار گرامبه ها که روغن سنبل خالص بود آورد و بر پاهای عیسی ریخت و با گیسوان خود آنها را خوش کرد به که آن خانه از بوی عطر پر شد. در این وقت یهودای اسخریوطی پسر شمعون که یکی از حواریون عیسی بود و به زودی او را تسلیم می کرد گفت چرا این عطر به قیمت ستی و پنج هزار ریال فروخته نشد؟ تا پول آن به فقرا داده شود او این را از روی دلسوزی برای فقرا نگفت بلکه به این دلیل گفت که خودش مسئول کیسه پول و شخص دزدی بود و از پولی که به او میدادند برمیداشت عیسی گفت با او کاری نداشته باش بگذار آن را تا روزی که مرا دفن میکنند نگاه دارد فقرا همیشه در بین شما خواهند بود اما من همیشه با شما نخواهم بود. اد از یهودیان شنیدند که عیسی در آنجاست. پس آمدند تا نه تنها ایسا بلکه ایلازر را هم که زنده کرده بود ببینند. بنابراین سران کاهنان تصمیم گرفتند که ایلازر را نیز بکشن زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران خود روگردان شده به عیسی ایمان آورند. فردای آن روز جمعیت بزرگی که برای عید آمده بودن، وقتی شنیدن ایسا در راه اورشلیم است، شاخه های نخر به دست گرفتن و به استقبال او رفتن. آنها فریاد میکردند کردن، حشیه انا، فرخونده باد پادشاه اسرائیل که به نام خداوند میآید. عیسی ایسا کرر اولاغی و بران سوار شد، چنان کلام خدا می فرماید، ای دختر صحیون دیگر نترس، اکنون پادشاه تو که بر کره علاقی سواره است می آید در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نمود اما پس از آنکه عیسی به جلال رسید آنها به یاد آوردند که این چیزها درباره او نوشته شده بود و همانطور هم آنها برای او انجام داده بودند موقعی که عیسی ای یلاذر را صدا زد و زنده از قبل بیرون آور عده زیادی حضور داشتند آنها آنچه را که دیده و شنیده بودند نقل کردند به این دلیل آن جمعیت بزرگ به استقبال عیسی آمدند زیرا شنیده بودند که عیسی این معجزه را انجام داده بود فریسیان به یکدیگر گفتند بینید که هیچ کاری از شما ساخته نیست تمام دنیا به دنبال او رفته است در میان کسانی که برای عبادت عید به اورشلیم آمده بودند، ایده یونانی بودند. آنها نزد فیلیپوس که اهل بیت سیدای جلیل بود آمدند و گفتند: ای آقا، ما می خواهیم عیسی را ببینیم. فیلیپوس رفت و این را به اندریاس گفت و آن وقت هر دوی آنها رفتند و به عیسی گفتند. عیسی با آنها گفت: ساعت آن رسیده است که پسر انسان جلال یابد. یقین بدانید که اگر دانه گندم به داخل خاک نرود و نمیرد هیچ وقت از یک دانه بیشتر نمی اما اگر بمیرد دانه های بیشماری به بار میآورد. آورد کسی که جان خود را دوست دارد آن را از دست می و کسی که در این جهان از جان خود بگذرد آن را تا به حیات جاودانی حفظ خواهد کرد اگر کسی میخواهد مرا خدمت کند باید به دنبال من بیاید و هر جا من باشم خادم من نیز در آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت کند پدر من او را سرافراز خواهد کرد. اکنون جان من در استراب است. چه بگویم؟ آیا بگویم ای پدر مرا از این ساعت برهان اما برای همین منظور من به این ساعت رسیدم. ای پدر نام خود را جلال بده. در آن وقت صدایی از آسمان رسید که می گفت، آن را جلال دادم و باز هم جلال خواهم داد. گروهی که آنجا ایستاده بودند گفتند صدای رد بود، دیگران گفتند ای با او سخن گفت. ایسا در جواب گفت، این صدا به خاطر شما آمد، نه به خاطر من. اکنون موقع داوری این جهان است و حکران این جهان بیرون رانده می شود. وقتی از زمین بالا برده میشم همه آدمیان را به سوی خود خواهم کشید. عیسی این را در اشاره به نوع مرگی که در انتظارش بود گفت. مردم به او گفتند تورات به ما تعلیم می دهد که مسیح تا به ابد زنده میماند. پس تو چگونه می گویی که پسر انسان باید بالا برده شود. این پسر انسان کیست ؟ عیسی با آنان گفت: فقط تا زمانی کوتاه نور با شماست. تا وقتی این نور با شماست راه بروید. مبادا تاریکی شما را فراگیرد. کسی که در تاریکی راه می رود نمیداند به کجا می رود. تا زمانی که نور را دارید به نور ایمان بیاورید، تا فرزندان نور شوید. ایسا این را گفت از پیشانان رفت و پنهان شد. با وجود موجزات بسیاری که در حضور آنان انجام داد آنها به او ایمان نیاوردند. تا سخن اشعیای پیام بر تحقق یابد که گفته بود ای خداوند آیا پیام ما را کسی باور نموده و آیا قدرت خداوند به احدی مکشوف گردیده است؟ پس آنها نتوانستند ایمان آورند زیرا اشعیا باز هم فرموده است. چشمان آنها را نابینا و دلهایشان را سخت گردانیده است، تا با چشمان خود نبینند و با دلهای خود نفهمند و به سوی من باز نگردن تا ایشان را شفا دهم. اشعیا این را فرمود زیرا جلال ایسا را دید و درباره او سخن گفت. با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند ولی به خاطر فریسیان و از ترسان که مباده از کنیس اخراج شوند به ایمان خود اقرار نمی کردن. زیرا آنان تعریف و تمجید از انسان را بیشتر از حرمت و عزتی که از جانب خداست دوست می می‌داشتند پس عیسی با صدای بلند گفت هر که به من ایمان بیاورد نه فقط به من بلکه به فرستنده من نیز ایمان آورده است هر که مرا می‌بیند فرستنده مرا دیده است من نوری هستم که به جهان آمدم تا هر که به من ایمان آورد در تاریکی نماند اما اگر کسی سخنان مرا بشنود و اطاعت نکند من در حق او داوری نمی کنم زیرا نیامدم تا جهان را محکوم سازم بلکه تا جهان را نجات بخشم داوری هست که هر که مرا رد کند و سخنانم را نپذیرد او را محکوم می سازد سخنانی که من گفتم در روز آخر او را محکوم خواهد ساخت چون من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و چگونه صحبت کنم و من میدانم که فرمان او حیات جاودانی است پس آنچه من من میگویم کاملا همان چیزی است که پدر به من گفته است